آیا دوباره گی را در بادشان خواهم زد آیا دوباره باخچه ها را به خواهم کاشت و شمدانی ها را در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت آیا دوباره روی لیوان خواهم رقصید آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد به مادرم گفتم دیگر تمام شد گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد. باید برای روزنامه تسلیتی بفرستی انسان پوک، انسان پوک پر از اعتماد نگاه کن که دندانهایش چگونه وقت جویدن سرود می خوانند و چشمهایش چگونه وقت خیر شدن می دارند. و او چگونه از کنار درختان خیس میگذرد، صبور سنگین، سرگردان در ساعت چهار، در لحظه که های آبی رکایش، مانند مارهای مردزد از سوی گلوگاهش بالا خزیده و در شقیقه‌های منقلبش آن هجای خونین را تکرار می کنند. سلام، سلام.